صفحه پنج. امروز اگر میهمان نورالدین از خانه او میرفت، رفت، فردا چندین نفر دیگر به جای او دور سفره او گرد میآمدند. وقتی رفت رفته پای دوستان به خانه نورالدین باز شد و ده دوست صمیمی او هر شب میهمان او بودند و او هم سخاوتمندان پول و ثروت باداورده را برای آنها خرج میکرد، و هر شب به هر کدام از آنها هم هدیه‌ای پیشکش میکرد. همسار با وفا و حوشیار نورالدین به او می گفت از تذکرات من خشکین نشو تو در حد اعتدار و میان روی می توانی میهمان داشته باشی و فکر روز را باید از نظر دور نداری اینگونه گونه زیاد روی ها و حزینه بی حساب فرجام خوبی در پی ندارد تو باید از روش پدر خود پیروی کنی و خود را به مقام و منزلت بلند درستانی و نام و شهرت پروازه او را دوباره با ابراز شخصیت خود از زنده کنی نورالدین در پاسخ سخنان همسرش فقط میگفت از خوشگذرانی و لذت سخن بگو و این حرفها مورد علاقه من نیست من در زمان پدرم حق انجام هیچگونه تفریحی نداشتم اما حالا آزادم و آنقدر ثروت دارم که نگران فردای زندگی نباشم و باید تا نفس آخر به خوشی و اشرت بگذرانم من در این سن باید همه جوانی و آزادی را احساس کنم. یکی از اموری که در نابودی مالی نورالدین تاثیر فراوانی داشت، این بود که هر وقت مباشر و مدیر امور مالی او صورت هزینه های سنگین او را برای آگاهی و بازرسی او به او نشان میداد، نورالدین بدون که ارقام حساب را ببیند و از وضع مالی و میزان هزینه آگاه شود تا به مناسب خرج کند به مباشر خود میگفت من به تو اعتماد کامل دارم. و میدانم همه این ارقام در صورت محاسبات درست است. مزاحم من نشو. لزومی ندارد صورت هزینه و موجودی مرا به من نشان دهی. مباشر دلسوز پاسخ داد: شما ارباب من هستید و باید این گفته‌ی مشهور را در نظر گیرید که میگوید کسی که پول مختصری دارد و درآمد هم ندارد، اگر بی حساب خرج کند، عاقبت توید است و به روز سیاه می نشیند. شما با مهمانی های شاهانه و پرزرگ و برق ارزانی می و علاوه بر آن در هر مهمانی دو دستی و بی حساب و اموال خود را به اشخاص بخشش می کنید و هر کس از هر شیء قیمتی متعلق به شما تعریف کند و یا از باق و شما ابراز خوشنوده نماید شما بدون درنگ آن را به او واگذار می کنید در فاسخ می گفت من نیازی به نصایه تو ندارم فقط خوردنی و نوشیدنی درجه یک برایم فراهم کن و فکر خودت را در مورد بقیه موارد ناراحت نکن. ثروت من تمام شدنی نیست. میهمانان و دوستان نورالدین اخلاق او را می و از او تمجید و ستایش می و از تخوابتش سخن می گفتن. مثلا یکی از دوستانش می گفت از تماشای باغ شما که در فلان محله قرار گرفته خیلی هست کردم. و دیگری می گفت آن آنخانه شما که در فلان خیابان واقع شده و اساسی اتیقه آن را آرایش فوق بخشیده یکی از بهترین خانه است که کنون دیده ام. نودین بالاافاصل قلم و کاغذ میآورد و آنها را به آن اشخاص انتقال میداد. خلاصه هر روز بخشی از املاک و اموال مروسی خود را به یکی از این دهتن دوست صمیمی واگذار میکرد و در فکر آینده خود نبود همین که یک نفر از این دوستان اظهار خوشنودی از چیزی می‌کرد، نورالدین می‌پرسید: «تو آن چیز را دوست داری؟» همین که پاسخ مثبت میشنید فوراً آن را به او انتقال کار به جای رسید که تمام وسایل زندگی و اساسی و قالی‌های بی‌نظیر و چلچراغ و سایر عشوی عطیقه را به دوستان بخشید و آخرین باغ مشهور خود را که باغ بهشت می‌نامیدند به یکی دیگر واگذار کرد. میهمانسرایی را که مرحوم پدرش برای پذیرایی تازه واردین و جهانگردان بنا کرده و درآمد شایانی داشت به یکی از آن ده دوست با گذار کرد نورالدین با روش احمقانه خود تمام ثروت پدر را که در طول یک عمر بذارت با کار شبان روزی به دست آورده بود در مدت یک سال همه را از دست داد تقریبا یک سال از فوت وزیر میگذشت شب که نورالدین خدمتکاران را مرخص کرده بود تا آزادانه تر از بزم خود با دوستان دخوانه لذت ببرد، نگهان شنید کسی در میزند، یکی از دوستان بخواست که به سوی در برود، ولی نوردین خودش رفت و در را باز کرد و مباشر خود را دید، مباشر از مزاحمت خود معذرت خواست که در این موقع شب بزم او را برهم زده است، در پشت سر نوردین نیمه باز بود و همان دوست که قفت رفتن از اتاق را کرده بود، در پشت آن در گوش ایستاده بود و بشنید که مباشر به نورالدین گفت من فقط اندکی پول دارم و برای گرفتن اجاره ها به هر کدام از مستاجرین که مراجعه کردم پاسخ دادم که ارباب کرایه‌ها را به ما بخشیده و ما برای از محل استفاده می‌کنیم. اینک دفاتر محاسبات به هزینه ها و هزینه‌ها و درآمد را آوردم که دارایی و موجودی و ارقام را به شما نشان دهم. آنچرا که ازم میترسیدم و به شما خوشدار می‌دادم، اکنون به سرمان آمده است. آنگاه مقداری پول از جیب خود بیرون آورد و گفت فقط همین را داریم و اگر قدرت مالی دارید در اختیار شما هستم و گرنه را مرخص کنید که کار دیگری پیش گیرم نوردین مات و مقهود مانده بود و قدرت سخن گفتن نداشت تمام سخنان مباشر را همون دوستی که گوش ایستاده بود شنید و با شتاب نزد دوستان برگشت و همه را برای آنها بازگو کرد و گفت دوستان دیگر از این پس مزاحم نورالدین نخواهیم شد زیرا در حقیقت دیگر با او کاری نداریم نورالدین به جامع دوستان پیوست و گفت بزن خود را ادامه دهیم همان دوست از جای خود برخاست و گفت مذرت می که باید بروم نورالدین گفت چرا به این زودی دوست پاسخ داد چون همسرم امروز زاییده است ناشارم به خانه بروم این را گفت و از در بیرون رفت دوست دیگر به بحانی دیگری خداحافظی کرد و بقیه آنها هم یکی پس از دیگری با بحانه های متفاوت رفتند و نوردین را در اتاق تنها گذاشتند. نوردین بعد از رفتن دوستان فوراً به اتاق همسر زیبا و دانای خود رفت و ماجرایی را که ما برای او گفته بود بازگو کرد. ماهروی ایرانی به او گفت من با شویه تا در حفو میل کردن دارایی خودت چلی روزی را پیشبینی می کردم، و بارها به تو یادآوری کردم که تو دیر رو توی درخت خواهی شد و هیچ کدام از این دوستان ظاهرا مهربان به یاری تو نخواهند آمد. تو مانند درخت پر ای بوده ای که وقتی همه میوه های تو را چیدند آن وقت درخت بدون میوه را به حال خود خود رها میکنند و دیگر به سراغش نمیآیند. نورالدین گفت حالا پی میبرم به آنچه که گفته بودی از روی دانایی و تجربه بوده و من اعتراف میکنم سخت در اشتباه بودم. ولی از حالا به بعد اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد و دیگر موساقی به آن نیشدم مهروی ایرانی گفت تو موقعی متوجه اشتباهات خود شده ای که دیگر خیلی دیر شده و وقت هر زمان که به تو میگفتم اشتباه میکنی جواب میدادی باید زندگی کرد و از زندگی لذت برد و فکر فردای خود نبودی و بعد هم میگفتی من مداخله نکنم من هم چنین کردم نورالدین گفت. گذشته را نمیتوان تغییر داد اما دوستان قدیمی خوبی دارم که میتوانم از آنها وام بگیرم و به تجارت بپردازم تا به وضع مالی خود سر و سامانی دهم این دوستان قدر دوستی و محبتهای مرا میدانند و فردا به سراغ آنها میروم و با پول فراوان برمیگردم زیرا همه آنها آماده یاری و همراهی با من هستند فردا صبح نورالدین به دیدار یکی از دوستان خود رفت و چکوش در را به صدا در و, و قلام صاحب خانه در را گشود و سلام کرد نورالدین گفت ارباب تو در خانه است قلام داد آری نام خود را به او گفت و از او خواست به اطلاع اربابش برساند پسر وزیر مرحوم به دیدن او آمده است قلام او را تعارف کرد و در قسمت ورودی خانه نشست در این موقع صاحب خانه با صدای بلند و با نهب زننده به طوری که نورالدین بشود فریاد زد به نورالدین بگو که من در خانه نیستم و هر زمان دیگر هم که به اینجا بیاید همین پاسخ را به او بده غلام بازگشت و گفت ارباب در خانه نیست و من خیال می کردم در خانه است نورالدین با یک دنیا اندوه و تعصف از آن خانه بیرون آمد و میگفت عجب دوست نمک نشناس و بی‌وفایی است که با من با این پستی رفتار می کند یک سال تمام از وجودم استفاده کرد و حالا از من روی برمیگرداند نورالدین سراغ رفیق دوم رفت او هم عیناً به همان شیوه به او پاسخ داد و بقیه دوستان او هم که همگی در خانه بودند به همین شیوه پاسخگوی او شدند نورالدین بعد از دریافت پاسخهای دوستان به خود آمد و شروع کرد به فکر کردن و به این نتیجه رسید که دوستان او مخاطر های مالی و بهره شدن از سخاوت و بخشش او اطراف او گرد آمده بودند و حالا که دیگر دست او گشه است با او کاری ندارند نورالدین با دلی شکسته و خاطری آزرده به خانه آمد و با قم فراوان در گوشهای نشست مهروی ایرانی نزد نورالدین آمد و گفت دوستان با تو چرا رفتاری نشان دادند نورالدین گفت دوستان به ظاهر دوست حاضر نشدند حتی با من روبرو شوند تا چرا رسد به آنکه تقاضای مرا بشنوند آنها مردم پست و فرومایهای هستند که فقط به فکر بحر من شدن از انوال و دارایی من بودهاند و حالا هم دیگر مرا نمیشناسند ماهرو گفت سرور من در این شرایط نامناسب باید قلام های خود را بفروشی و لوازم و اساسیه گرانبهایش را هم به پول تبدیل کنی و فعلا برای مدتی با آن پول زندگی کنی تا خداوند گشایشی در کارها پدید آورد نورالدین تداری از قلام های خود را که فقط سربار او بودند و خزینه نگهداری آنها میش از استفاده خدمتی آنها بود فروخت و مدتی با آن پول زندگی کرد و بعد از آن مقداری از ارشای قیمتی خانه را که بسیار گرانبها بود، مکمتر از نصف قیمت فروخت و مدت‌ها با سکه‌هایی که به دست آورده بود زندگی کرد تا آن هم به پایان رسید. وقتی نورالدین به طور کامل توحید دست شد، از ماهروی ایرانی پرسید، اکنون چه باید کرد او هم پاسخ داد مرا بفروش و با پول آنکه مقدار قابل ملاحظه ای خواهد شد از اینجا به شهر دیگری برو که تو را نشناسند و در آنجا به کار و کسب بپرداز وزیر مرا به ده هزار سکه خریداری کرد حالا چون مدتی زمان گذشته با اندکی کمتر می میتوانی در بازار برد فروشان مرا بفروشی نورالدین فریاد برابد تو مرا چگونه مردی تصور ای؟ آیا فکر می من تو را دوست ندارم؟ آیا مرا آدم پس و فرمایهی می من نزد پدرم سوگن یاد کرده ام که هرگز تو را نفروشم و طلاق هم ندهم من حاضرم مرد را بپذیرم ولی تو را از خودم جدا نکنم من تو را دوست دارم حالا که چنین پیشنهادی می کنی معلوم می شود به اندازه‌ای که من تو را دوست دارم تو مرا دوست نداری ماهوی ایرانی پاسخ داد من می که تو مرا خیلی دوست داری اما در چنین وضع نمساعدی پیشنهاد من برای رهایی تو از این گرداب است علاقه واقعی من به تو موجب فدا کردن خودم به خاطر تو می شود ضرورت و ناچاری همه قوانین را برهم می زند من قلبن لحظه هم حاضر نمی شوم از تو جدا باشم اما اندوه بیکاری و بی پولی تو را رنج می دهد. و طبیعی است که من هم رنج می برم. اما کلید این مشکل و رهایی ما به دست من است. امید من آن است که بعد از این با این پول به تجارت پردازی و ثروت کافی به دست آوری و دوباره مرا خریدانی کنی و زندگی تو آن با خوشبختی را با یکدیگر ادامه دهیم. نورالدین که به صحیح بودن پیشنهاد ماهرو اعتقاد داشت، و میدانست که تنها راه خلاصی از این فقر با فروختن ماهروس. با نظر او موافقتش را اعلام کرد و او را به بازار بَدِ فروشان برد و در آنجا یکی از درباریان به نام حسن را دید نورالدین او را صدا زد و گفت ای برای فروش حاضر دارم بعد ماهرو را به دست حاجی داد و هرسه هر سه در دکه ای رفتند و حاجی حسن ماهرو را به پستویی برد در آنجا وقتی ماهرو نقابت چهره برداشت حاجی حسن از زیبایی استثنایی او خیره شد و فهمید کنیزی به این زیبایی در عمر خود ندیده آنگاه به گفت این همان روی ایرانی است که پدرت به ده زاسکهٔ طلا خریداری کرده بود نورالدین گفت آری، همون همان کنیزاک حاجهسن به بازرگانان برده که در بازار اجتماع کرده بودند رو کرد و با صدای بلند گفت زیباترین زن جهان را اینک به شما عرضه میکنم کنیز ماهروی که تا قنون مادر گیتی مانند آن را نیافریده است بازرگانان برده همراه حاج حسن به دکان او رفتند و همین که سیمای زیبای ماهرو را دیدند دهانشان از حیرت باز ماند و همین آنها گفتند حقیقتا کنیزی زیباتر از این در عمر خود ندیدیم. ارزش ازش او کمتر از چهار هزار سکه یه طلا نخواهد بود و باید قیمتگذاری او از این رقم آغاز گردد هم همه در میان بازرگانان افتاد. حاج حسن به نورالدین گفت: این کنیزک ارزش بسیار دارد و من هم آنجا در توان خود دارم به کار می بندم تا بالاترین بها را به دست آورم. در این موقع شاؤی همان وزیر بدندیش و سیاه دل در بازار نمایان شد و وقتی شنید حاج حسن کنیز بسیار زیبایی را به چهار هزار سکه طلا می می‌کند، جلو رفت و در حالی که بر اسب خود سوار بود، فریاد کرد حاج هسن من میخواهم آن کنیزک را ببینم با وجودی که شیوه بازار برده فروشان آن بود که برده را به تنهایی به یک نفر نشان نمیدادند معحاضا از ترس وزیر و نفوذ او حاجی حسن ماهرو را به او نشان داد وزیر از زیبایی و پیکر موزون و تراشیده ماهرو شگفت زده شد و بر عظمت آفریدگار تحسین کرد او نمیدانست که ماهرو متعلق به نورالدین است وزیر به حاجی حسن گفت من حاضرم این کنیز را چهار هزار سکه طلا تلا خریداری کنم البته در صورتی که سایر بازرگانان حاضر بهای بیشتری پیشنهاد نکنند آنگاه به سوی بازرگانان که با یکدیگر تبادل تبادر نظر میکردند نگاه خشمگین و معنیداری کرد یعنی خاموش و توازه خرید کنیز موقوف. حاجی حسن دوباره اعلام کرد چهار هزار سکه طلا ولی بازرگانان سکوت کردند در این هنگام حسن که علت سقوط بازرگانان را فهمیده بود نزد نورالدین رفت و گفت اگر وزیر به اینجا نیامده بود ماهرو به قیمت بسیار بالایی به فروش رفته بود اینک بازرگانان از ترس وزیر پیشنهادی برای خریدن نمیدهند و وزیر پیشنهاد چهار هزار طلا برای خرید ماهرو داده است باید دعو به فروشم بفروشم نورالدین بسیار ناراحت شده پرسید چاره چیست حاجی حسن پاسخ داد راهچار آن است که تو در حضور همه بازرگانان بگویی من واقعا نیت فروختن نداشتم اما چون در مقابل نافرمانی که این کنیز نشان داده بود سوگند یاد کرده بودم که او را بفروشم ناچارم برای رد سوگند او را به بازار برد فروشان آوردم و در معرض فروش قرار دادم و این سوگندم انجام شده او را برمیگردانم زیرا دوستش دارم بعد هم او را به طور غیر جدی کتک بزن، و دستش را بگیر و از بازار خارج کن در این صورت دیگر کسی حق ایراد ندارد نورالدین از این راهنمایی خوشحال شد و به همین ترتیب رفتار کرد و خواست دست ماهرو را بگیرد و او را همراه خود ببرد که وزیر بدنهاد با اسب خود جلو آمد تا دست کنیز را بگیرد و او را بر از اسب خود بنشاند نورالدین که کاملا متوجه اوضا بود محکم افسار اسب او را در دست گرفت و مانع حرکت او شد در این هنگام وزیر را از اسب پایین کشید و روی زمین انداخت و شروع به کتک زدن او کرد مردم هم که از وزیر ناخشنود بودند از این وظن شاد شدند و به تماشای کتک خوردن او پرداختند نورالدین که وزیر را دشمن پدر خود و خودش می دانست با ضربات پیاپهی خود مجروحش ساخت و مردم هم او را تشویق بهزدن وزیر میکردند و قریب شادی از دل برمیآوردند نورادین بیش از حد وزیر بدندیش را زیر مشت و لگت و ضربات خود آزار داد سپس دست محرور را گرفت و به سوی خانه خود روان گشت دو تن از غلامان وزیر زیر بازوان او را گرفتند و در همان حالت آشفته و آغشته به خون او را در بار سلطان آوردند وزیر گریان و نالهکنان شکایت می کرد سلطان پرسید چه اتفاقی افتاده که تو به این وزد دو دچار شده ای؟ وزیر هم از این فرصت استفاده کرد و دروغهایی به سود خود و به زیان نورالدین بیان کرد. از جوب به عرض سلطان رسانید که او برای خرید کنیزی که کارهای آشپزی خانه او را بکند به بازار فروشان رفته بود و کنیزکی را به چهار هزار سکه طلا فروختند. من از بازرگان فروشنده خواستم کنیزکی را که او از زیبایی و هنرهای او داد سخن میداد ببینم. وقتی سیما و اندام آن کنیزک را شاهخار آفرینش است دیدم از شدک حیرت مبهوت ماندم و فورا پرسیدم صاحب این زیباروی کیست باگرگان پاسخ داد نورالدین پسر خاکان وزیر که میخواهد او را به فروش رساند سلطان بهخاطر دارند که سه سال پیش خاکان ده هزار سکهٔ تلا برای خرید این کنیز ماهرو از شما دریافت کرد او بعد از خریدن این کنیز که شایسته سلطان بود وزیر آن را به پسر خود هدیه کرده است نورالدین هم بعد از مرگ پدر تمام دارایی و اموال پدر را حیف و مل کرده و شان طوهی دست شده کنیز زیبا را به بازار برد فروشان آورده بود که اتفاقا من هم به آنجا رفته بودم وقتی من دیدم چهار هزار سکه طلا برای آن قیمت تعین کرده اند پیشنهاد دادم که آن را برای سلطان خریداری کنم و سلطان از هر جهت بر خریداران برتری دارد وقتی این سخن را گفتم نورالدین از فروش و تحویل کنیز خودداری کرد و با دشتم به من گفت که حاضر است او را به رایگان به یک یهودی بدهد تا در اختیار من گذارد به او گفتم فکر نمی کنی رفتار تو با این ترتیب بیحرمتی به سلطان است که حق سروری برگردن پدر تو و من دارد به جای اینکه سخنان من او را از تصمیم خود بازگرداند و خشونت تو خود افزود و ما را از از پایین کشید و زیر مشت و لذت گرفت و با بیرحمی مرا مجروف ساخت اصول از, از سلطان دادخواهی می کنم که چون به خاطر شما با من چنین رفتار ظالمانی در حضور مردم شده است او را مجازات کنید. تا در عبرت سایری موثر واقع شود. وزیر بعد از سخنان خود سیل عشق از چشمانش جاری شد. سلطان که از سخنان وزیر آتش خشمش شونه شده بود به رئیس نگهبانان دستور داد با تن سپاهی به خانه نورالدین بروید و خانه او را قارت و سپس با خاک کنید. و خودش را هم با همون کنیز در زنجیر کنید و نزد من بیاورید قبل از اون که رئیس نگهبانان مأموریت خود را انجام دهد یکی از درباریان که از بردگان خاکان وزیر بود و سنجر نام داشت و خاکان او را به دربار آورده و رفت رفته ترقی کرده بود و رئیس مأمورین داخلی قصد بود خود را شتاب به نورالدین رسانید و دستور سلطان را به او گفت و اضافه کرد اگر فورا از این خانه فرار نکنی جان خود و این کنیز را از دست خواهی داد عجل کن که یک دقیقه تأخیر هم موجب پشیمانی خواهد بود نورالدین پرسید چه اتفاقی رخ داده سنجک گفت فعلا جای پرسش و پاسخ نیست وزیر بدندیش تنها به قاضی رفته و خشم سلطان را در مورد تو برانگیخته است تو باید هرچه زودتر همراه با این کنیز از خانه فرار کنید و در مکانی خود را پنهان سازید آنگاه ادامه داد ای سرور بزرگوار این چهل سکی طلا را که تمام موجودی نقدی من است از من قبول کن تا به کمک آن خود را به محل امنی برسانید مرا بخشید که بیش از این نمیتوانم خدمتی انجام دهم این هم رئیس نگهبانان و چهل تن سیاهی سر می‌رسند سنجر چهل سکه طلا را به نورالدین داد و با سرعت از آنجا دور شد نورالدین فوراً داستان را به اطلاع ماهرو رسانید و او هم نقاب بچه‌رانداخ و بی‌درنگ فرار کردند خوشبختان کسی در طول راه آنها را ندید و توانستند به زودی خود را به رودخانه فراک برسانند و سوار کشتی شوند که تازه لنگرهای خود را از رودخانه برداشته و عزم حرکت بود نورالدین از ناخدا مقصد کشتی را پرسید او هم پاسخ داد که ما به شهر بغداد می‌رویم از شنیدن این پاسخ بسیار خوشنود شد حال نورالدین و کنیز را به حال خود می‌گذاریم و به سراغ رئیس قراولان سلطان می‌رویم فرمانده قراولان سلطنتی همراه چلتن سپاهی به خانه نورالدین رسیدند و چخوش در را به صدا درآوردند ولی کسی در را نگشود و فرمانده از همسایگان پرسید از نورالدین چه خبر دارند آنها که او را بسیار دوست داشتند کاملا اظهار بی اطلاعی کردند و فرمانده دستور داد در خانه را بشکنند و داخل شوند آنها در را شکستند و وارد شدند و همه اتاقها را جستجو کردند اما اثری از نورالدین و کنیز نیافتند و خانه را با خاک یکسان ساختند و مراتب را به سلطان گزارش دادند سلطان از وزیر مجروح دل‌رویی کرد و قول داد نورالدین را به مجازات خواهد رساند و وزیر هم روانه خانه اش گردید سلطان دستور داد در های شهر جار بزنند که هر هرکس نورالدین و كنیزکه او را دستگیر کند یا از محل آنها خبر دهد هزار سکهٔ طلا پاداش خواهد گرفت و اگر کسی او را پنهان کند به سختترین کیفرها مجازات خواهد شد با وجود این از نورالدین و ماهروی ایرانی خبری به سلطان نرسید نورالدین و ماهرو سفر دلپذیری روی رودخانه داشتند تا به بغداد رسیدند و از کشتی پیاده شدند و در خیابانهای شهر به گردش پرداختند شهر پر جمعیت و بود هوایش مطبوع و تمام چهار فصل بغداد هوای متدلی داشت و از سرمای زننده خبری در این شهر نبود مردم برای سیاحت از نقاط مختلف گیتی به این شهر میآیند، آیند بودخانه های دشله و فرات و خیابان های پر از نخل خرما و کشتی های در حال حرکت روی دجله منظره دلنشینی داشت نورالدین و ماهرو که در این شهر غریب بودند همسنان در خیابان ها گردش می‌کردند، و از کوچهی به کوچهی دیگر می‌رفتند، تا آنکه وارد کوچهی مقابل روده دجله شدند و از آنجا به انتهای آن رسیدند. ونایهان بنا... باغ و قصر زیبایی توجه آنها را به خود جلب کرد. لایه در باز بود و آنها به طور پنهانی به قصر وارد شدند. هوا رو به تاریکی می‌رفت. در گوشه ای از محل ورودی دونیمکت بزرگ دیده می شد. آنها که خسته و گرسنه بودند، از آب زلال چشمه‌سار باغ نوشیدند و روی نیمکت‌ها دراز کشیدند. خستگی و ی ملایم آب که از چشم وارد آب آبنمایی می‌گردید، آنها را فوراً به خواب عمیقی فرو برد. این باغ رویایی متعلق به خلیفه هارون رشید بود که شبهای آرام تابستان را در آنجا به سر می‌برد و آن را امارت نگارستان مینامیدند. زیرا در وسط این باغ اماراتی به سبک معماری ایران بنا کرده بودند و تالار وسیعی در این محل قرار گرفته بود که تمام دیوارهای آن با بزرگترین شاخکارهای نقاشان ایران تز این یافته بود. نگهبان این قرش یکی از افسران قدیمی به نام شیخ ابراهیم بود که خلیفه به او سفارش کرده بود که کسی حق ورود به این امارت و باغ را بدون اجازه او ندارد. موقعی که نورالدین و ماهروی ایرانی وارد باغ شده بودند شیخ ابراهیم برای انجام کاری از باغ بیرون رفته بود و در را نیمه باز گذاشته بود حال که مراجعهت کرده و سپیده صبح دمیده بود مشاهده کرد که دو نفر روی نیمکت‌ها به خواب رفتند اتدا شیخ ابراهیم می‌خواست بانهی خیزران آنها را تنبیه کند که خلاف فرمان خلیفه به درون باغ آمدند اما با خود اندیشید که شاید آنها در شهر قریب باشند آنگاه شیخ ابراهیم به آرامی با پای خود به پای نورالدین زد و او را بیدار کرد نورالدین بیدار شد و مرد سال خوده ای را دید که ریش بلند سفید رنگی داشت از جای برخاست و خود را به پای او انداخت و گفت پدر مهربان پیرمرد کلامش را برید و گفت فرزندم چه میخواهی و از کجا میایی؟ نورالدین گفت ما در این شهر غریب هستیم و دیروز وارد شدهایم پیر مرد با پُمهربانی گفت بلند شدی تا من باغ را به شما نشان دهم سپس آنها را در باغ گردش داد نورالدین پرسید شما صاحب این باغ هستید شیخ ابراهیم گفت آری از پدرم به ارث رسیده است نورالدین گفت باغ و به این زیبایی در شهر بس وجود ندارد آنگاه شیخ ابراهیم نام خود را آنها گفت و نورالدین خوشحال شد و گفت خداوند تو را برای ما فرستاده است این دسته‌ای طلا را بگیر و غذایی برایمان بیاور تا دور هم بنشینی و لذت ببریم. شیخ گداهین که از سکه طلا خوشش میامد به راه افتاد تا برای آنها خوراکی تهیه کند و در طول راه با خود میگفت جوان با سخاوتی است و خوب شد او را از باغ بیرون نکردم من اگر یک دهم ده این پول را هم خرج کنم غذای شاهانه‌ای تهیه خواهم کرد و با بقیه آن میتوانم سایر نیازهای خودم را تأمین سازم. نوردین و مهروی ایرانی در مدتی که شیخ ابراهیم نبود اطراف را گردش کردند تا به امارت نگارستان رسیدند و از دیدن پرده های نقاشی و زیبایی عمارت و پله های و شمدانها و سایر اساسی غرق شگفتی شدند در این هنگام شیخ ابراهیم مراجعت کرد و خوردنی های برای آنها آورد نوردین از او پرسید که عمارت نگارستان هم متعلق به اوست پیرمرد با این پرسش در بومبست قرار گرفت و نتار بود پاسخ مناسب بدهد. آنگاه گفت معلوم است زیرا امارت هم قسمتی از این باغ را تشکیل میدهد. نوروتین گفت چون ما امشب را میهمان شما هستیم اگر داخل امارت و قسمت های مختلف آن را از داخل نشان دهی به مال لطف بزرگی کرده ای؟ شیخ ابراهین میدانست امشب قرار نیست خلیفه به باغ بیاید؟ موافقت خود را اعلام داشت و سینی خوراکی ها را روی پلکان امارت گذاشت و کلید را از جیب بیرون آورد و در را باز کرد با چراغ آنها را به داخل امارت هدایت کرد. نوردین و ماهروی ایرانی از نقاشی ها و کارهای هنری و شاهکارهای گناگون و چلچراق ها و لوازم می ها تعریف می کردند. نوردین که این جلال و شخور را می دید به یاد زندگی گذشته خود افتاد و آهی از دل کشید. چه خبراهین که سفره را آماده کرده بود آنها را صدا زد و دوره هم به خوردن شام مشغول شدند. بعد از آن که شام به پایان آمد نورالدین کنار پنجره رفت و باغ را که در زیر نور محتاب چون روز روشن شده بود نگاه می کرد و ماهرو را صدا زد و هر دو سرگرم تما